دیشب به سیل اشک ره خواب میزدم نقشی به یاد خط تو بر آب میزدم عبروی یار در نظر و خرقه سوخته جامی به یاد گوشه محراب میزدم هر مرغ فکر که سر شاخ سخن به جز بازش تره تو به مزراب میزدم روی نگار در نظرم جلوه می نمود و از دور بوسه بر رخ محتاب می زدم. چشمم به روی ساغی و گوشم به قول چنگ فالی به چشم و گوش در این باب می زدم. نقش خیال روی تو تا وقت صوبدم بر کارگاه دیده بی خواب ساقیب به سوت این غزلم کاسه می گرف می گفتم این سرود و می ناب می زدم خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام بر نام عمر و دولت احباب می زدم